اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلي محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لأهله وصلاة على أهله اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وانصاره و شیعته و المستشهدین بینیاد. خب قبل شروع درس الحاضر الصلات و الصوم. ان شانه نحن نستمع من من نجم الحسینه. خب. بسم الله الرحمن الرحیم. در نقص باعث معاونت معاونت نگرانی است که از ریشه اعانت گرفته شده یعنی ریارگیری و استعانت مدد و کمک و یاری و انداد معنا می دهد و مؤامنت خودش دستگیری و مددگاری و یاوری کسی معنا می که در بسیاری از کتابهای مثل کتاب کلیلا و دمنه و بعضی از کتابهای دیگر که در راستای اسلام چاپ و نشر گردیده است این کلمه در خصوص ظهور صاحب زمان بیشتر ذکر گردیده است وزیشه بعضی از آن که استفاده می بخش بخشی که می باشد که هم پشت شدن معنا می دهد. یعنی وقتی کسی در مشکل می باشد، ما با او هم پشت شدن و مشکل او را رقم می کنیم. و در از جاهای دیگه که وجود نوجود نیست، استفاده میشه شد کلمه در بخش نسرت، نسرت از کلمه نصر گرفته شده که در قرآن عظیم و به بارها یادواری شده و به معنای یاری، آون مظاهرت، نسرت و باشد. و همچنان یارگیری می باشد, یار گیری. یار گیری می باشد. نصرت یاری کردن و یاری دادن رو نیز معنا می دهد تو در قرآن شریف بهشتر جواب های به معنای نصرت دادن یعنی یاری دادن شخصی یاری کردن کسی می باشد بخش آنمون بریم یک دقیقا کسی تا هنوز متوجه شد که فرق ذریف بین معاونت من نصرت چیه هست نصرت آموزی نداشتم همکاری کردهام، همکاری با یاری چقدر فوق العاده. همکاری با یاری، هم توی مثلا مثلاً ما در بخش میتونیم همکاری کنیم، اما یاری نمیکنیم. مثلاً دری بخش ما باینو یک بخش دست میتوند، اما میتوند تا آخرش ما مال تو نیستم، تا آخر دلتو مخندی نخوندیم، اما یاری کسی به تا آخری نه در هر شرایط آموزش باشه. خیلیال، این یک تفاوت خوبه. خب کسی دیگه چی یاری و همکاری یاری مثلا ما تا آخر هموارش همکاری بریم همکاری مثلا فقط به دو باید این چیز بر. یعنی بارش فقط بطانی موسوس اصول اینه فقط نام میگیریم اما بارش تشریحات نمیدونم اما اگر یاری کنیم تشریحات چون برایش خب. خب، این توضیحات که اینجا آوردن توضیحات قشنگ است خب؟ انشالله شما انتظار برین راجع به هم توضیحات خود یک بار مطالعه امیق شب که رفته داشته باش روز روزی دیگه باسم همینو توضیح دید فرق کوچیک و ظریف بین یاری چه معاونت و نصرت هست یا یک آره همون دیگه همون نسخن. نسخن. خب اون یک آیه چی داره آره چی فتخانقریب داره نه <تصفيق> نسخ رو من الله نسخ رو من <متح�> الله خرق یا پیروزی ببین، ببین بات آیا تقریبا تفاوت بین معاونت و نسرت پیداست؟ معاونت که است؟ آلا به شما بگیم؟ خب نمیگیم به با شما می آیا قریب میشه؟ آیا؟ سعی کنه چی میگیم؟ خب؟ اگر ایشان با ایشان همکاری چی کنه؟ یعنی با ایشان کمک کنه به نصرت گفتن میشه یا ماوینه از اون طرف اگه مثلا پدرش نصرت به چی کنه چی گفتن میشه اینی تخرف ها خفز آره به نظر من گفتیم باشیم فقط یکم زرفت داره آره خو خیر باشد. بخش چهرم بگم در بخش عالم و عالم در با و حدیث از تعالی علی السلام ذکر می کنی. در حدیث در آیت قران شریف آمده که بسم الله الرحمن الرحیم هل يستوی الذين يعلمون والذین لا يعلمون او يا کسانی که میدونند و کسانی که نمیدونند و در جایی از حدیث آیت قران شریف بس که میگه آلمان کسانی هستند که بعد از پیغمبر شفاعت میکنند کسایی که اونا را پایدوی کردن و کسانی که از علم اونا استفاده کردن. فا از در ما خوصه میتونیم بهترین و بردارین نقش در یک جامعه یک عالم بازی میکنن. با همچنان، حدیث از حضر تعریق است که میگن عالم و بلا امن کشجب الا سمر. عالم بی امن کشجب الا سمر، عالم بی امن و من درخت بی سمر است. یعنی به این معنا نمو کاریدان بخشی که شما ذکر کردین که خواب عالم بهتر از نماز است. بری منو میگه که اگه یک طالب عطا یک کلمهش که بنیان گذار یک بخش بسیار مهم و یا یک تفکر اندیشه ای باشه بهتر از این است رو 100 900 بار نماز بخونم تفکر و, و سعادت خیلی عالی قشنگ بود خب اینش خوب بود کسی دیگه هم اومدگی دارم؟ خب پس شما فرق بین علم و علم رو توضیح بدین که انشالله شاء وارد جلسه درس بشیم در تقلید ما شما داشتیم گفتیم تقلید عبارت از چیست؟ تقلید. عمل کردن به از کدام مشتری میتوان تقلید کرد؟ پسند باشه. باشه باشه خیلی خوب، همون جامع و شرایط باشه، درست؟ جان شرایط. حالا از جمله مسائلی که روی یک مشتهد بحث بحث اعلامیت هست، خب؟ تفاوت بین اعلام و عالم چیست؟ صحبت میکنیم؟ آه، اشان توضیح میده، انشاءالله موریم جلسه امروز خود رو میخوانیم خب، بسیار رحمان فرق تفاوت بین عالم و عالم چیست؟ عالم شخصی است که مرتباً یاد از اعلام کنه یک مطلب کوینتر نی باشه. در یک سوابق یا مشترکه در لحظه‌ی مامی خانه تقلید بکنیم از یک مشترکه از کسی که عالم است یا عالم باید از عالم باید تقلید بذارشه. وقتی که اعلام آن را بالاتر است و در مرکزی رسیده که می‌تونه فتوای بعدی چیزی داره خودش بده. نظر بر روایاتی که از عیم دارند روستاست. اما عالم کسی است که انواع حق فتوای کم داره و علمیتشون مسابع عالم کمتر نی باشه. در شراید امروزی که ما نگی میکنیم برای ما بهتر است که از عالم تقلید بکنیم اگر عالم را ما مثلا به اون درست آگاهی نداریم به وجودش که های هست یا ما تقلید بکنیم و نکنیم میتوانیم در شراید امروزی از عالم باید تقلید بکنیم چون عالم ها را بیشتر ما پد داریم و می توزیار مسائلاشون هم در لحساس کنگی می باشه و یک تفاوت بسیار خاصه که در اینجا باز ت عالم و عالم واقعی و عالم غیر واقعی چی هست؟ خب در عالم واقع همون چیزی است که تبقیبا نشان هم داشت صحبت کرد بگیم شما این پروس تفاوت بسیار کچک که وجود دارد بین عالم واقعی و غیر واقعی است که عالم واقعی خدا ترس هست و عالم غیر واقعی خدا ترس است. خیلی عالی، خیلی عالی آره ببینید، این نکته خشنگی بودا، آیه قرآن هم هستم و چی میگن؟ این ما یخشی الله من عباد العالمان آره، یخشی الله یا یخش الله؟ یخش الله آه، یخش خب، الله من عباد العالمان خب، این ما یخش الله من عباد العالمان گفت خداوند در این آیه میفرماید که از بندگان او علما نسبت به خداوند خشیت و ترس دارند و در این آیه خداوند حقیقت عالم و دانشمند را معرفی کرده. است. خیلی عالی. شما چهار نفر خشیت معنی چی؟ چهار نفر، چهار نفر است که سین. عمل واجب چی؟ سوجا چی؟ پس گوش می‌دیم دیگه، خوب؟ دیگه چی نمی‌خواید؟ خیلی عالی. خیلی عالی. توضیحات قشنگ بود خب یک نکته وجود داره که اشان اشاره کرد خوب باش باز کنیم ما امروز اگر در شرایط قرار گرفتیم که نتوانستیم اعلم را از عالم تشخیص بدیم اعلم یعنی عالم تر دیگه درست شد یکی عالم داریم یکی عالم تر اونی که عالم تر، آباه اونو بهش اعلم میدیم اگر ما نتونیم اعلم را از عالم تشخیص بدیم وظیفه چی هست؟ در رساله های عملی آمده جواب همه مسئله هست حالا چون دیر میشه ازش میگذاریم روزی دیگه انشاءالا شما خواهیم پرسیم نگاه از کی میپرسیم؟ از این شش نفر میپرسیم خواه؟ اگر نتونیم علم را از عالم تشخیص بدیم چی کار کنیم؟ شما دو، شما دو، شما زید سعی شد؟ آره از دیگر را سوال نمیماییه بود فکر سوال کردیم تر آره. خوب پس بیان که درس رو بخونیم. هوالعلم. درس لحاظه آشن. درس چندم یازدهم. الصلاتو و صوم. نماز و روزانه. الفارق اول اصله. فرع اول یعنی چ؟ آه هم مع... معروف چند تا بود؟ ده تا. پر اولش نماز, نماز. نماز. هست الفر اولا صلاح نماز هست نحن نحتاج لعدای صلاح نحن ندارن درست؟ نحن قبلا خواندیم دیگه میدانیم ما, ما. نحن نحتاج لعدای صلاح الى اعمال قبلها وفیها ما محتاج هستیم خاطر ادا کردن نماز اینورا میدنند که لازم نیست نس ترجمه بنویسین. کوشش کنین ترجمه ننویسیم خب؟ چون اگر بنا بر ترجمه نویسی باشه از بوت بس قرآن کریم ترجمه رو ترجمه فاهم سراغ بگیرید. اینو خیلی فقط کلمه را اگر ترجمه نوشتین بنویسین، جمله ننویسید. جملار رو خودتون بتونین ترجمه کنید. مثلا برای نماد لازم نس شما نحتاج رو ترجمهش بنویسین. نحتاج واقعا دیگه. لازم نیست اداره ترجمهش بنویسین. ادای دیگه. صلاتن خیلی معروفه درست اعمالم که میدونین قبلا که میدونین دیگه لازم نیست ترجمه بکنیم ها کره کمی برامو آ یادو کره معنامونیم هر کلمه‌ای که شما ترجمش نمیدونستین بنویسین بفیشون رها کنین درست ها نحن نحتاج لاداء الصلاه الى اعمال قبلها و فیها، ما محتاج برای ادا کردن نماز به عملهای عمل عمله دیگه درست شد به عملهای قبلها یعنی پیش از نماز و فیها یعنی در خود نماز درست برای اینکه نماز را بتوان ادا کرد یک سلسله اعمال باید پیش از نماز و در خود نماز انجام شود دیگه درست آره خب خالا پس دو نو شد دیگه یکی قبلها یکی ها اعمال و ما قبل سلات اعمال, آه. آه. اعمال پیش از نماز ما قبل نماز چیه؟ اول چه؟ افخارات پیش از نماز تحارات هست. پاکی ها این تحارات میتونه باشه یا تحارات عن نجاسات هست از نجاسات ها م? یا اینکه که از احداث هست حدث ها براشد؟ حدس حدس حدس نه خب؟ حدس حدس که است به معنی آدم شبیه کی گمانه میزنم حدس یعنی یک چیز از انسان سر میزنم خب تحارت از نجاسات چی رخم؟ لابود دمین قهارت لباس والجسم لعدای صالات این جمله را شما تقریباً میتونید ترجمه کنید دیگه. لا بوده یعنی ناچار هست کسی که نماز میخوانه که تهارت از نجاست بگیره منظور چی من فهرست لباس پاک کردن لباس دیگه چی جیس خاطر خاطری چی آه لعده ساله خاطر عدای نماز درست جا؟ راحت شدین؟ مم. آه اینو دیگه سر می روشتین. خب دو خب اینش خب واضح هست دقیقه میکنند بدن انسان اگر نجیس باشد نماز نمیش. لباس انسان اگر نجیس باشد نماز <تصفح> یک زمان های میشه حداقل سه مورد را میتوان یاد کرد که بدن یا لباس نجیس باشد میشه یا مثلا در صحرا هستیم هیچ آب پیدا نمیشه چرا؟ چون که هوا مقدر سرده که یخ زده بخی عواره. لباس هم از تند بکشید دیگر خفه شدید از خاطر سردی سردید اونجا لازم نیست لباس رو پاک کنه با همون لباس نجیس نباس میکنه درست آره یکی هم کسی هست. که اصلا توانایی مثل همون مورد هست منطقه ممکنه در صحرا نباشه، در خانه باشه. مثلا مریض نمیشه که یک قسمتی بدنش رو پاک کرد درسته؟ صبح مریض با همو نجاست میتونه نماز خود رو بیخوانه و جای دیگه هم که مادر میتونه با یک کمک از مشکلات بچهشان نماز بخوانه. او رو باز انشالله متعالیه کنه در توجه مسائل درستان؟ مادران یک تخفیف اینچونینی برای شما هست پس این نجاس ها چه درست؟ دو، غن الاخداس باید تهارت جست از حدث ها لابود دمین الگوگوئی، اول غسل لعدائها ما برای اینکه نماز بخوانیم علایه که از نجاست ها باید بدن و لباس, بدن و لباس پاک باشد باید از احداث هم پاک باشه یعنی یا وزو یا غسل باید داشت یا وزو یا غسل <تصفح> اگر غسل واجبه غسل اده غسل واجب نیست باید وضو رو؟ درست نه لابد من یا الغسل خوب دقت کنه اینجا تیموم نی یا غسل باید, باید یا وزو یا غسل برای ادای نماز داشت و ادا کان الغسلو واجبا فلغسلو وقت غسل واجب بود فلغسل پس باید غسل کنیم دیگه نه؟ و ادا لا یمکن لا یمکن الوبو او اولغسلو وقتی غسل و غسلش ممکن نبود یعنی نه ترسی من جام بدیم و زمان چه؟ فلواجبو اتایم بدل از غسل بدل از غسل یا بدل از غسل بدلن عن الوبو اویل غسل قبل صلاب بدل از غسل یا بدل از غسل کی؟ بنام قبل قبل قبل قبل برسیم؟ پس ما دو وظیفه داریم تحارت از احداث یا وزو یا غسل اگر غسل و غسل رو می توانستم، نوبت به تیمم؟ نمی داشت اگر اینا ممکن نبود تیمم هم هست سعیشون؟ خوب پس اعمال قبل از نماد چی شد؟ تحارات، جس، امیلال آه. هم... آه. هم تحارات باید قانل نجاسات باشه و هم قانل احداث باشه احداث. دلست. دلست. دلست. دلست. لباس و جسم آره لباس و جسم نجاسات میشه اخ... وزو یا غسل احداث, احداث. احداث. فا خیلی خوب واجب غوسل یک نفر بگم بد نیست کسی که چند غوسل به گردنش واجب باشه میتونه یک تا خب پس ما قبل صلات شد خلاص آه. اعمال حين اعمال و حین صلا. در جریان جاریان یا حین نماز. کنتروس صلاح کنتروس صلاح نه صلاح وحی خمسه تون ارکان لسالح وحی خمسه تون ارکان لسالح کنتروس نماز در جریان نماز واجبه و این کنتروس خمسه تون چند تایا؟ پنجتاست که این تا رکن نماز هم إيه؟ ها، يلا كده سومنا. ها، تقوسية نهضي. بفینین اینجور که همین نقطه آمده دیگه این از باجباتش هست اگر اینوی قسمت ها رعایت نکنیم نماز ما رفته که رفته فرق بین عالم و غیر عالم همینه دیگه ما گفتیم که خواب آدم عالم بهتر از نماز خوندنه غیر عالم. غیر عالم یعنی قسمت ها که رعایت نکرد نمازش رفته دیگه درست این ارکان پنج توست به اینوان پنج روح نی نماز خب یک قیام ببین قیام در دو جای باید باشد ببینید چی میگیم وقت آدم نی... تکبیرت و لحرام میگه تکبیرت و یعنی چی؟ آمد در اونمو وقت اگر استاد نباشیم یعنی نیمه نیم باشیم باید مرد. کامل و درست استاده بود باید کسی که مشکل کرده او آوه خواهیش چیدی باید خواهی چیدی درست شد اونا مسئله چید ما بود شما که الحمدرله سالمیم نم حد اقل متوجه باشیم که در این موقع درست استاده کشیم سایی شد؟ حینا تکبیرت ال احرام این یک دیگه چی و القيام المتصل به رکوع اون قیام که متصل به رکوع نشد متصل برو که یعنی چی؟ همه سعی کنید. مثلا سوره خوره و الله احد میخوایم. درست؟ آخرین آیه چیه؟ ولم یکول لهم خوب دقیقه. خوب دقت میچه بلید. نفر احد میگه نمیگه کذالک الله ربی رو گرفته شید. درست؟ اینم اینجا نمیشه خوب دقت. متوجه شدیم چی میگیم؟ باید کدالک الله ربی در استادگی کامل گفته بشه وقتی خلاص شد بعدش برای بریم وقتی خلاص شد نه این ذکر گفته شده بریم توجه شدیم؟ آه یعنی کار رو نکنیم اگر این کار را کنیم قیام سرعت نماز نگرفته و نماز چی میشن؟ باتیو میشن سایکونیچمی گه یک نوت دیگه هم اضافه به عنوان وظیفه و مسئولیت ما و شما امروز اینجا اومدیم خب دیگرای ما شما نیومده و خانگیای ما شما کامل نیامده و دیگر رو خبر بدینینی خب همین سوالی چی بگم اخری که هزا اله کلا درس شهرا نمیشه خیلی عالی پس من باز هم تاکید منیم خب در خانه باید گفت ها جانو تکرار کنیم آره ان این قسمت تمام قیام متصل بر رکوع منظور چیه؟ ای قبل رکوع یعنی پیش رکوع ای یعنی یعنی دیگه یعنی ای یعنی طب یعنی قیام حین تکبیرات الاحرام در جریان در هنگام الله اکبر گفتن و قیام المتصل رکوع و اون استادنی که استادن اتصال به رکوع پیدا میکنه در اونم استادن باید قیام داشت یعنی استاده بود نه اینکه ذکر را گفته شده آره. این تجریج احرام هنگام الله و قیام المتفصل بر رکوع یعنی اون قیامی که آخرش بر رکوع خاتمه میشه واسه قیامی که آخرش بر رکوع تمام شد. ارکان بعدش توزیع داده. ای قبل رکوع یعنی پیش از رکوع باید استاد بود. پیش از رکوع باید استاد بود. خب. نیاز. خب چی شد؟ نیاز. نون چی شد؟ نیاز. نیاز. نیت خب متاجه این شاید. نیت واجیب و خدا چی هست؟ نیت هم باید یاد نیت یعنی الله اکبر ره چی هست؟ خب، همینجا هم باید یاد آوری کرد. روکو نارسیده، سبحان الله، نباید سبحان الله تمام نشده جای بلند؟ نه الان اون نگرفت. راست استوچه، یعنی که چی مگیم؟ متاسفانه ان شما دیدیم ما که متوجه شدید. بعض یا سبحان الله هم مرتب و مثلا که گفت. و نمونا تمام شده وقت میخیزه. یکی حدا نشه آره. نصف راهی نمیشه، خب؟ تو اون سعی کنید چه دقت دقیق ما و شما یک مورد داریم که در دا وسط را گفتیم بشه <ا rehabilitation> یک مورد و اون به حول الله هست غیر از علمی به حول الله کلیه زکرها باید با بدن آرام و در حالت صبح یا ثابت باید گفت متوجه شدیم؟ آره پنج سین یعنی چی؟ سجده سجده از سجده تون، دوتا سجده داریم دیگه نه؟ سجده تون الفرع الثانی الصوم اصاومو و هو الامساک عن المحرمات روزه عبارت از امساک از محرمات هست امساک چی؟ خود داریم امساک روزه خود داریم ساوم، بمعنی روزه امساک خود داریم، محرمات حرام ها و المفقرات و المفقرات دیگه این سا کس چه کنیم؟ مفترد. از مفقیرات چیزایی عبارت از, از خودداری از محرمات و مفترات هست مفترات چی اون چیزی که اف سبب افتار میشن افتار چی؟ افطار نان که خورده میگه افتار کرد صحيح هوستور درسته پس رساندن غبار و حلق سبب افتار هست خوردن و سبب افتار هست بعضی مسائل دیگه هم هست که باید توجه به مسائل بخونید صحیح احسن از کی؟ من اذان الفجر الى اذان المغرب خب درست شد؟ از ازان صبح تا اذان مغرب خب چه خوب نیت چیست هدف چیست چرا چونین باید کرد امتثالاً لامر الله تعالی به خاطر اطاعت امر خداوند تعالی امتصال به معنی میسل کردن هست امتصال اینجا شما اطاعت بینیسیم بهتر شده؟ شده؟ چیزی شده؟ خب متوجه نکته در چیز خالد. روزه را اینجا علمی قدر آورده خو خواه؟ محرمات انشاءالله میفهمید مفترات مواردش مشخصه نکته مهمی که هست خو؟ اگر کسی از اول سوق هیچی که از علمی تا بگای دیگر مثل که ما شما روزه میگیریم هیچ روزه رو باطم نکنه به خاطر خدا روزه نگیرد روزه نگیرفته 27 یعنی امتثالاً لأمر الله از جمله ارکان روزه است که بدون ازو از اصلا روزه به روزه است فهمیدین؟ گرسنگی و تشنگی مهم نیست، مهم آن است که ما برای خدا باید این را انجام بدیم. فهمیدین؟ اینه دیگه. پس بنابراین این خب دقت کنین کسی که از صبحی که خواب مرا، تا شاه هیچ بیدار نمیشه. او خوب گشنه بوده بگرد که من گشنم که بوده کارم کارم درست شد؟ روزه که برای خدا که نکرده آه پس بنابراین باید روزه قذا کنه یا نکنه؟ بکنه قذا نه گرفته دیگه؟ نه رمضان آه سایشور؟ الله على سيدنا محمد و آلی